کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده کلوس <متحد> بزرگ و کلاوس کوچک در روستایی دو نفر زندگی می کردن که هر دو یه اسم داشتند. اسم هر دوی اونها کلاوس بود اما یکی از اونها چار اسب داشت و یکی دیگه یه اسب برای اینکه بشه اونها رو از هم تشخیص داد به اون یکی که چهار اسب داشت کلاوس بزرگ و به دیگری که فقط یه اسب داشت کلاوس کوچک می گفتند اما بشنوید چه اتفاقی برای هر دوی اونها افتاد در تمام طول هفته کلاس کوچک زمین کلاس بزرگ را شخم زد و تنها اسبش را به او قرض داد در عوض کلاس بزرگ هم چهار اسبش را به او قرض داد البته فقط یه روز در هفته اون هم یک شنبه هورا هلو کوچک وقتی شلاغش را به پشت هر پنج اسب میگوید خیلی لذت میبرد چون احساس میکرد صاحب اونها شده خورشید در آسمون میدرخشید و صدای زنگ کلیسا همه جا پخش میشد مردم در حالی که بهترین لباسهاشونو پوشیده بودند انجیل به دست به سمت کلیسا می رفتند تا به سخنرانی کشیش گوش بدند. اونها چشمانشون به کلاوس کوچک افتاد که با پنج اسب زمین را شخم میزد و با خوشحالی شلاقش را به زمین میکوبید و فریاد میزد هی hey, اسبای من کلاوس بزرگ گفت تو نباید این حرفا بزنی؟ چون وقتی یکی از این اسبها مال توست حق نداری این صحبت را یه بار دیگه تکرار کنی اما به محض اینکه یک نفر دیگه به اون طرف اومد کلاوس کوچک یادش رفت نباید اون جمله رو به زبون بیاره و دوباره فریاد زد هی hey, اسبای من کلاوس بزرگ گفت بهترست بس کنی اگه یه بار دیگه این حرفا بزنی چنان ضربهی به سر اسبت میزنم که درجا بمیره کلاوس کوچک گفت قل میدم دیگه اون حرفو تکرار نکنم اما به محض اینکه یه اده از اونجا رد شدن و او صبح خیر گفتن او دوباره از فکر اینکه پنج اسب زمینش را شخ میزنه زوغ کرد و فریاد زد هی اسبای من کلاوس بزرگ گفت الان نشونت میدم اسبای من یعنی چه بعد با یه میله آهنی چنان ضربهی به سر تنها اسب کلاوس کوچک زد که حیوان همونجا به زمین افتاد و مرد کلاوس کوچک شروع به گریه کرد و گفت وای من دیگه هیچ اسبی ندارم بعد پوست اسبش رو کند و اون رو خشک کرد توی کیسه انداخت رو به شهر برد تا به کسی بفروشم او راه درازی در پیش داشت و باید از جنگل تاریک و بزرگی عبور می کرد شدیدی شروع شد او راه رو گم کرد و قبل از اون که بفهمه باید از کدوم طرف بره هوا تاریک شد و دیگه غیر ممکن بود که بتونه اون شب خودش رو به شهر برسونه درست جلوی او خونه روستایی بزرگی قرار داشت که پنجرههاش بسته بود اما نور از های اونها بیرون میزد کلاوس کوچک با خودش فکر کرد چقدر دلم میخواد بتونم شب رو اونجا بمونم او جلو رفت و در زد همسر کشاورز در رو باز کرد ولی تقاضای او را شنید و جواب رد داد و گفت که شوهرش خونه نیست و او هیچ غریبهای را به داخل خونه راه نمیده کلوس کوچک گفت بسیار خوب مجبورم همین بیرون بخوابم. زن در را به رویش بست. کمی اون طرفتر یه انباری اونجا قرار داشت و بین آنجا و خانه حیات کوچکی که سقف اون را شاخ و برگها ها پوشانده بودن بود. وقتی چشم کلاوس کوچک به آنجا افتاد فکر کرد. به نظر جای راحتی میاد، و اگه اون لکلک مرا نق نزنه میتونم اونجا استراحت کنم چون یه لکلک آشیوناش را اونجا ساخته بود خودش هم کنارش ایستاده بود به این ترتیب کلاوس کوچک روی سقف حیاط رفت و دراز کشید هواسهای چوبی روی پنجره ها قسمت های بالایی را نپوشونده بود و اون میتونست از اونجا داخل خونه رو ببینه چشم او به میز بزرگی افتاد که مقداری نوشیدنی گوشت سرخ شده و یک ماهی تزین شده روی اون قرار داشت. همسر کشاورز و یک قبرکن پشت میز نشسته بودند و هیچ کس دیگه تو خونه نبود. زن دیوان مرد را پر کرد و مرد هم چاقوش تو بدن ماهی فرو برد. کلوس با خودش گفت کاش کمی از اون غذاها هم به من میرسید. بعد سرش رو به طرف پنجره نزدیکتر کرد و تازه چشمش به یک کیک خوشمزه افتاد. اونجا واقعا جشنی برقا بود بعد صدای نزدیک شدن کسی به گوشش رسید او کشاورز بود و به خونه برمیگشت کشاورز مرد خیلی خوبی بود فقط یه صفت عجیب داشت او طاقت دیدن قبرکنها رو نداشت اگه چشمش به یکی از اونها میافتاد عقلش عقلشو از دست میداد و دیوونه میشد به همین دلیل بود که قبرکن زمانی برای احوال پرسی به سراغ همسر کشاورز اومده بود که مطمئن بود شوهرش خونه نیست و زن مهربون هم خوشمزه ای براش پخته بود. اما وقتی صدای پای کشاورز را شنیدن، ترسیدند و همسر کشاورز از قربکن خواهش کرد داخل یه صندوق بزرگ خالی بره. مرد اطاعت کرد چون میدونست کشاورز بیچاره طاقت دیدن یه قربکن رو نداره. زن با عجله همه خوراکی ها رو داخل اجاق پنهون کرد. چون اگه چشم شوهرش به اونها میافتاد، حتما مشکوب میشد. کلاوس کوچک وقتی دید همه اون خوردنی‌های های ناپدید شد آهی کشید و گفت وای خدای من خدای من وقتی که شاورز به او نگاه کرد پرسید کی اونجاست؟ چرا اونجا خوابیدی؟ بیا به داخل خونه بریم کلاوس کوچک برای او تعریف کرد که چطور راهش رو گم کرد و خواهش کرد اجازه بده شب رو اونجا بمونه کشاورز گفت بله حتما اما اول باید یه چیزی بخوریم زن با مهربونی هر دوی اونها را پذیرفت میز رو چید و با بزرگی پر از حلیم جلوی اونها گذاشت کشاورز که خیلی گرسنه بود با اشتها غذاشو خورد اما کلوز پوچک نمیتونست به ماهی تزین شده و گوشت سرخ شده و کیک فکر نکنه و همه حواسش پیش اجاقی بود که غذاها در اون قرار داشت او کیسهش را که پوست اسب در اون قرار داشت زیر میز جلوی پاش گذاشته بود حلیم اصلا خوشمزه نبود به همین دلیل او لگدی به کیسه زد پوست خشک شده صدای بلندی داد کلماس کوچک رو به کیسهش کرد و گفت کیس؟ همون موقع ضربه دیگه به اون زد طوری که صدای بلندتری از اون بیرون اومد کشاورز پرسید هی کی چی داری؟ کلاس گوشک گفت یه جادوگر. او میگه که ما نباید این حلیم رو بخوریم چون او به خاطر ما داخل اجاق را پر از گوشت و ماهی و کیک کرده. کشاورز گفت باور کردنی نیست. بعد اجاق رو باز کرد و چشمش به غذاهای ای که همسرش اونجا پنهون کرده بود افتاد. اما فکر کرد همه اونها رو جادوگر تو کیسه آماده کرده. زن چیزی نگفت و فوری غذاها رو روی میز چید و اونها ماهی و گوشت سرخ شده و کک رو خوردن. کلاوس کوچک یه بار دیگه پاشا به کیسه کوبید و دوباره صدای خشخشی به گوش رسید. کشاورس پرسید این دفعه چی میگه؟ کلاوس کوچک جواب داد میگه سه بطری نوشیدنی هم برای ما کنار اجاق گذاشته. زن مجبور شد نوشیدنی هایی را که پنهون کرده بود بیاره. کشاورز با خوشحالی اونها را هم نوشید و آرزو کرد. ای کاش او هم مثل کلاوس کوچک یه جادوگر داشت. بعد پرسید آیا میتونی شیطون را به اینجا بیاری؟ الان خیلی سر و مودلم میخواد اونو ببینم. کلاوس کوچک گفت بله جادوگر من هر کاری که بخوام انجام میده. مگه نه؟ بعد لگدی به کیسه زد و ستای خشخش بلند شد. او گفت شنیدی؟ او میگه بله. اما شیطون اونقدر زشته که ما چشممون نباید بهش بیفته کشاورز گفت ولی من اصلا نمی ترسم اون چه شکلیه؟ او خودش رو به شکلی یه قبرکن در میاره کشاورز گفت پس حتما خیلی زشته راستش رو بخوای من جرعت ندارم به یه قبرکن نگاه کنم ولی اشکالی نداره چون میدونم اون شیطونه سعی میکنم طاقت میارم اما او نباید زیاد به من نزدیک بشه کلاوس کوچه گفت باید با جادوگر مشورت کنم و لگدی به کیسه زد و رو به اون نزدیک کرد کشاورز گفت چی میگه کلاوس گفت میگه اگهر صندوقیٚ را که اون گوشه از باز کنه میتونی شیطون را که داخل اون نشسته ببینی اما باید مواظب باشی که فرار نکنه کشاورز گفت پس شما هم مواظب باشید به طرف صندوقی رفت که همسرش قبرکن واقعی رو در اون پنهون کرده بود و قبرکن بیچاره داخل اون داشت از ترس سکته میکرد کشاورز در صندوق رو کمی بلند کرد و چشمش به او افتاد بعد جیغی کشید و عقب پرید و گفت آه او رو دیدم دقیقا شبیه قبرکنی است که میشناسم و واقعا غیر قابل تحمله و دوباره شروع کرد به نوشیدن و اونقدر نوشید که نصف شب شد کشاورز گفت باید جادوگر تو به من بفروشی هر چه بخوای به تو میدم حتی حاضرم همین الان کیسه پول جلوت بذارم کلاوس کوچک گفت نه نمیتونم قبول کنم فقط فکرشو بکن این جادوگر چه کارایی میتونه برام انجام بده کشاورز التماس کنان گفت اما من هم خیلی دلم میخواد چنین چیزی داشته باشم بالاخره کلاوس کوچک گفت بسیار خوب چون تو خیلی مهربونی و اجازه دادی امشب در خونت بمونم اون رو به تو میفروشم تو باید به جای جادوگر به من یک کیسه پول بدی کشاورز قبول کرد گفت قبوله اما باید این صندوق رو هم با خودت ببری من نمیتونم اونا در خونم نگه داشته باشم از کجا معلوم شاید شیطون هنوز داخلش باشه کلوس کوچک کیسه ی پوس خشک شده رو به کشاورز داد و در عوض مقدار زیادی پول دریافت کرد. در زم کشاورز یه چرختستی هم به او داد تا پولها و صندوق را با اون ببره. کلاوس کوچک با او خداوزی کرد و به همراه پول و صندوقی که قبر تن داخلش نشسته بود به راه افتاد. در آن سوی جنگل رودخونه بزرگ و عمیقی جریان داشت. آب با چنان سرعتی حرکت می کرد که امکان نداشت کسی بتونه مخالف اون شنا کنه پل بزرگی به تازگی روی اون ساخته شده بود و کلوس کوچک وسط آن ایستاد، طوری که قبلکن هم بشنوه با صدای بلند گفت حالا با این صندوق قرازه چکار کار کنم؟ اونقدر سنگینی که انگار داخلش از سنگه بهتره به جای اینکه اونو دنبال خودم بکشم تو رو خونه بیندازمش اگه آب اون رو خونه آورد که چه بهتر؟ اگه هم نیاورد اشکالی نداره. بعد کمی صندوق رو تکون داد تا مثلا نشون بده میخواد که اون رو تو آب بندازه ناگهان کن از داخل صندوق فریاد زد نه نه، این کارو نکن بزار اول من بیرون بیام. کلاس کوچک با لحنی که مثلا انگار خیلی ترسیده گفت ای وای چه صدایی؟ او اینجاست؟ باید فورین را تو آب بندازم تا غرق بشه قبل کن فریاد زد نه نه اگه بذاری من بیرون پیام یه کیسه پر از پول به تو میدم کلاوس کوچک گفت خب این شد یه حرفی و در صندوق را باز کرد قبل کن خیلی سری بیرون پرید صندوق خالی رو داخل آب پرت کرد و بعد به خونه او رفتند و یه کیسه پر از پول به کلاوس کوچک داد دستی کلاوس با اون کیسه قبلی که از کشاورز گرفته بود، حالا پر از پول شده بود. وقتی کلاوس کوچک پول ها رو روی زمین خونش خالی کرد با خودش گفت از اون اسب پول خوبی گیرم اومد. وقتی کلاوس بزرگ بشنوه که من با فروش پوست تنها اسبم چه ثروتی به دست آوردم؟ از عصبانیت دیوونه میشه. ولی من به چیزی نخواهم گفت. بعد پسری را سراغ کلاوس بزرگ فرستاد تا از اون یه پیمونه اندازگیری براش قرض بگیره. کلاوس بزرگ فکر کرد، یعنی میخواد با این پیمونه چه چیزی رو اندازه بگیره. بعد کمی غیر تای پیمونه ریخت، تا کمی از هر چیزی که توی اون ریخته میشه به غیر بچسبه. به این ترتیب وقتی پیمونه نزد صاحبش برگشت سه سکه نقره و چند سکه معمولی به تای اون چسبیده بود. کلاوس بزرگ گفت. این چه معنی میده و با عجله به سراغ کلاوس کوچیک رفت گفت تو این پولها رو از کجا آوردی کلاوس کوچک گفت از فروش پوست اسبم من اونو دیروز بعد ظهر فروختم کلاوس بزرگ گفت پس معلوم میشه قیمت خوبی دارم و فوری به خونه برگشت و تبرشو رو برداشت سر هر چهار اسبش رو برید و پوستشون رو کند و به شهر برد او در خیابون ها فریاد میزد. پوست پوست پوست خوب بخرید همه دباقه ها کفش دوست ها دورش جمع شدن تا قیمت پوست ها رو بپرسن کلاوس بزرگ گفت قیمت هر کدوم یه کیسه بزرگ پوله همه جواب دادن مگه دیوونه شدی؟ یعنی فکر میکنی ما بابت این یک کیسه پول بد بدید؟ او دوباره فریاد زد پوست پوست، پوست خوب بخرید و هر کس که قیمت را میپرسید جواب میداد یک گیس پول مردم گفتند او ما رو مسخره کرده بعد کفش دوزها خطکش هاشون رو برداشتن ها هم سراغ شلاغ های چرمی رفتند و کلاوس بزرگ رو حسابی عدب کردند. اونها در حالی که کلاوس را مسخره میکردند فریاد میزدند پوست پوست یا از شهر بیرون برو یا پوست خودت رو میکنیم کلاوس بزرگ برای اینکه جون جون خودشو نجات بده با تمام سرعت پا به فرار گذاشت وقتی به خونه رسید گفت خیلی خوب الان میرم و حساب این کلاوس کوچیک رو که به دستش میذارم میخوام اون رو بکشم مادر بزرگ کلاوس کوچک تازه مرده بود او زن زیاد مهربونی نبود اما کلاوس کوچک از مرگ او خیلی ناراحت بود. جنازه او را به خونش برد و روی تخت گرمانرم خودش خوابون تا شاید زنده بشه. جنازه تمام شب را روی تخت موند و مرد یه گوشه روی صندلی خوابش برد. نیمه شب ناگهان در باز شد و کلوس بزرگ تبر به دست وارد شد. یه راست به طرف اون رفت و ضربهی به سر مادر بزرگ او زد و فکر کرد سر کلوس کوچکه بعد گفت دیگه نمیتونی سرمو کلاه بذاری بعد به خونش برگشت کلوس کوچک با خودش فکر کرد عجب مرد بد جنسی میخواست منو بخشه. مادر مادربزرگم شانس اورد که قبلا مرده بود وگرنه به دست او کشته میشد بعد لباس زیبایی به مادربزرگش پوشوند و یک اسب از همسایه قرض گرفت و یک کالسکه به اون بست مادر بزرگ رو روی سندلی عقبی نشون تا موقعی حرکت نیفته. بعد به راه افتاد. وقتی آفتاب تولو کرد اونها به مسافرخونه خونه بزرگی رسیدن. کلاوس کوچک پایین پرید و وارد اونجا شد تا چیزی بنوشه. صاحب مسافرخونه خونه خیلی ثروتمند بود. او مرد خوبی بود فقط زود عصبانی می شد. او به کلاوس کوچک گفت صبح بخیر صبح به این زودی کجا میری؟ کلاوس کوچک گفت با به شهر میرم او توی کالسکه نشسته و من نمیتونم اونو به داخل بیارم میشه لطف کنید و یه لیوان نوشابه برش ببرید در ضمن اگه ممکنه بلند صحبت کنید چون گوشش خیلی سنگینه صاحب مسافرخونه گفت چشم؟ حتما؟ و یه لیوان بزرگ را پر از نوشابه کرد و اونو برای مادر بزرگ مرده که در کالسکه نشسته بود برد بعد گفت بفرمایید این لیوان نوشابه رو از طرف پسرتون آوردم. اما زن مردی هیچ جواب می نداره و همانطور بیر حرکت نشست صاحب مسافرخونه با صدای بلند پریاد زد صدای منو رو این لیوان نوشابه رو از طرف پسرتون آوردم و این جمله رو چند بار تکرار کرد اما زن از جاش تکون نخورد و بالاخره مرد عصبانی شد و لیوان رو به طرف زن مرده پرد کرد به همین خاطر زن که به سندلش بسته نشده بود از پشت به داخل کالسکه افتاد کلاوس کوچک بیرون پرید و گردن مسافر دار رو گرفت و فریاد زد آهای تو مادر رو کشتی ببین پیشانیش شکاف کاف بردشته. صاحب مسافرخونه در حالی که دستهاش رو به هم گره زده بود گفت وای چه بدبختی بزرگی دلیلش اینه که من زود عصبانی میشم کلاوس کوچیک عزیز من به تو یک کیسه بزرگ پول میدم و مادر تو با احترام دفن میکنم فقط از این موضوع چیزی به کسی نگو وگرنه من سرم رو از دست خواهم داد به این ترتیب کلوس کوچک یکیسه کیسه پول گرفت و صاحب مسابقه خونه مادر بزیکو رو با احترام دفن کرد وقتی کلوس کوچک با اون همه پول به خونه رسید پسرش را سراغ کلوس بزرگ فرستاد تا پیمانه اندازه‌گیری شو قرض بگیره کلاوس بزرگ گفت یعنی چی؟ مگه اون من اون رو نکشتم؟ باید برم و با چشمای خودم اونو رو ببینم به همین دلیل این پیمونه رو برداشت و خودش به خونه کلاس کوچک برد او به پولهایی که کف اتاق ریخته بود خیره موند و پرسید خب بگو ببینم این پول رو از کجا آوردی؟ کلاس کوچک گفت تو مادر بزرگ رو کشتی نه منو؟ من اون رو با کیسه پول عوض کردم. کلاوس بزرگ گفت چه معامله خوبی و با عجله به خونه رفت و تبرش رو برداشت و مادر بزرگش رو کشت. بعد اون رو توی کالسکه گذاشت و سراغ دارو فروش رفت و از اون پرسید آیا یه جنازه به دردش میخوره؟ دارو فروش پرسید او کیست و کجا پیداش کردی؟ کلاوس بزرگ گفت اون مادر بزرگمه من اون رو کشتم تا با کیسه پول عوضش کنم. دارو فروش گفت تو دیوونه ای. اگه این حرفها رو جای دیگه ای بگی سرت رو بر بات می‌دی. بعد به او گفت که کار خیلی زشتی کرده و آدم بدجنس و بیرحمی و باید مجازات بشه. بالاخره کلاوس بزرگ وحشت کرد توی کالسکه پرید و به سرعت به خونه برگشت. دارو فروش و بقیه مردم که فکر می‌کردند او دیوونه شده اجازه دادند که بره. کلاوس بزرگ همانطور طور که به طرف خونه میرفت گفت. حساب تو میرسم حساب تو میرسم کلاوس کوچک او به محض اینکه که به خونه رسید بزرگترین کیسهش رو برداشت و به سراغ کلاوس کوچک رفت و گفت باز هم منو رو دست انداختی اول اسبها ها مکشتم و بعد مادر رو همه اینها تقصیر توه ولی دیگه اجازه نمیدم به کارات ادامه بدی بعد کلاوس کوچک رو گرفت و او رو داخل کیسه انداخت کیسه را رو روی شونش گذاشت و گفت میخوام تو رو قرب کنم. خروج خونه راه زیادی بود و کلاوس کوچک هم چندان سبک نبود جاده از کنار یک کلیسا می گذشت صدای پیانو به گوش می رسید و مردم آواز می‌خواندند کلاوس بزرگ کیسه را جلوی در کلیسا به زمین گذاشت و فکر کرد بهتر وارد کلیسا بشه کمی آواز بخونه کلاوس کوچک نمیتونست فرار کنه همه مردم داخل کلیسا بودند به همین خاطر او هم با خیال راحت وارد شد کلاوس کوچک توی کیسه پیچ و تاب می خودش تکون میداد اما نمیتونست تناب رو باز کنه همون موقع چوبان خیلی پیری به اونجا رسید موهای او مثل برف سفید بود و اصای بلندی در دست داشت او یه گله گاو رو در جاده پیش می برد گاوها به کیسه خوردند و کیسه واژگون شد کلاوس کوچک نالهکنان گفت افسوس من خیلی جوونم اما باید بمیرم چوبان گفت من بیچاره خیلی پیرم ولی نمیمیرم کلاوس کوچک گفت کیسه را باز کن و به جای من توی اون برو اینطوره خیلی زود میمیری چوبان گفت این که خیلی خوبه کیسه رو باز کرد و کلاوس کوچک فوری بیرون پرید و پیرمرد گفت پس مواظب گاوهای من باش بعد توی کیسه رفت و کلاوس کوچک کیسه را بس تا همراه گاف ها به راه افتاد. کمی بعد کلاوس بزرگ از کلیسا بیرون اومد. کیسه را روی دوشش انداخت اما احساس کرد بارش سبکتر شده. چون چوپان پیر نصف وزن کلاوس کوچک را هم نداشت. چقدر بردنش برام راحت شده؟ فکر کنم به خاطر اینه که کلیسا کمی عبادت کردم. وقتی او به کنار رودخونه امیغا خروشان رسید کیسه را که چوبان پیر داخلش بود توی آب انداخت و چون فکر میکرد کلاوس کوچیک در کیسه هست پریاد زد کار تمومه دیگه نمیتونی به من کلک بزنی. بعد بره افتاد تا به خونه برگرده اما وقتی به جاده از رسید چشمش به کلاوس کوچک و گله گاف ها افتاد کلاوس بزرگ گفت یعنی چه؟ مگه من تو رو قرخ نکردم؟ کلاوس کوچک گفت چرا تو نیم ساعت پیش مرا توی رودخونه انداختی کلاوس بزرگ پرسید پس گاوهای به این بزرگی را از کجا آوردی کلاوس کوچک گفت اینها گاوهای آبی هستند الان همه ماجرا را برات تعریف کنم. اما قبل از اون باید از تو تشکر کنم که منو به رودخونه انداختی چون حالا من روی خشکی هستم و خیلی ثروتمند شدم نمیدونی توی کیسه چقدر ترسیده بودم. وقتی من از روی پل پرت کردی باد در گوشم خیلی صدا کرد. من توی آب سرد افتادم و فوری به تیرود رودخونه رفتم. اما هیچ صدمه ای ندیدم. چون کف اونجا چمن نرم و زیبایی رویده بود. من روی چمن افتادم و کیسه باز شد. بعد دختر زیبایی با لباس سفید و حلقه گلی روی موهایش دستم را گرفت و گفت آیا تو کلاوز کوچک هستی؟ بیا این گافه رو بگیر و یک کیلومتر جلوتر یک گله دیگه منتظر تایه. من اونها رو به تو هدیه میدم. من تازه فهمیدم رودخونه یک مسیر رفت آمد برای مردم دریایی است. آنها برای سفر از دریا به خشکی باید از کف رودخونه پیش برند. اونجا پر از گل و سبزه بود و ماهی های رنگارنگ رنگ از کنار مردم رد می شدند. چه مردم مهربونی اونجا زندگی میکردن و چه گله های چاق و روی چمنها ها کلاوس بزرگ پرسید: پس چرا دوباره به خشکی اومدی؟ اگه من جای تو بودم سرزمین زیر آب رو ترک نمیکردم؟ کلاوس کوچک گفت: آها این کار رو برای راحتی خودم کردم؟ همطور که گفتم اون دختر دریایی به من گفت یک کیلومتر جلوتر یک گله دیگه منتظر منه؟ و منظور او از یک کیلومتر جلوتر یک کیلومتر در زیر آب بود اما من میدونستم که راه رفتن توی آب خیلی سخته به همین دلیل به خشکی اومدم تا این فاصله رو از روی ساحل رودخونه جلو برم و زودتر و راحتتر به گله آبیم برسم کلاوس بزرگ گفت آه تو خیلی خوششانسی فکر میکنید که اگر من هم به رودخونه بپرم چنین گله گیرم بیاد کلاوس کوچک گفت بله حتما ولی من نمیتونم تو رو توی کیسه بذارم و تا رودخونه ببرم چون خیلی سنگین هستی اگه میخوای خودت تا اونجا بیا و بعد توی کیسه برو تا من در اون رو ببندم و با کمال میل تو رو توی رودخونه بندازم کلاوس بزرگ گفت خیلی ممنون ولی اگه به اونجا برسم و هیچ گله گیرم نیاد حساب تو میرسم امکان نداره اینقدر به من بدبین نباش. و بعد به طرف رودخونه رفتن. وقتی چشم گاف های تشنه به آب افتاد، اون طرف حمله کردند تا آب بنوشن. کلوس گوچه گفت، ببین چطور میدوند؟ میخوان دوباره به تی رودخونه برگردن. کلوس بزرگ گفت، میبینم، ولی اول باید به من کمک کنی و گرنه کتک میخوری. بعد به داخل کیسه بزرگی که پشت یکی از گاف ها بود رفت و گفت یه سنگ هم به اون ببند چون میترسم به کف رودخونه نرسم. کلاوس کوچک گفت حتما اون سنگ بزرگی به کیسه بست و در اون رو محکم بست و به داخل رودخونه انداخت. شلب! کلاوس بزرگ توی آب افتاد و پایین رفت. کلاوس کوچک با گلش به طرف خونه بره افتاد و زیر لب گفت فکر نکنم هیچ گلی گیرش بیاد. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me نقط/مهران دوستی نشانی وبلاگ ما M